الا، بستان 17 مه 2008. یکی از روزهای خوش و ملایم بهاری بود که این داستان عجیب شروع شد. سالها بعد که الا برمیگشت و به گذشته مینگریست لحظه شروع را آنقدر در ذهنش تکرار می کرد. که همه چیز به نظرش نه مثل خاطره ای دور بلکه مثل صحنه تئاتری می رسید که در گوشه ای از کائنات هنوز هم ادامه دارد. زمان بعد از ظهر یکی از شنبههای های ماه مه، مکان آشپزخانه خانه شم. همه اعضای خانواده دور هم نشسته بودند و غذا می‌خوردند. شوهرش داشت بشقاوچش را با غذای مورد علاقهش، ران سرخ شده مرغ پر می‌کرد. از دو قلوها ایوی، قاشق و چنگالش را موازی هم در دست گرفته بود و صداهایی از خودش در می آورد که انگار دارد تبلی خیالی می نوازد. خواهرش اورلی هم برای آنکه با رژیم جدیدش روزانه حد اکثر 650 کالوری سازگار شود، مشغول محاسبه لغمههایی بود که میتوانست بخورد. دختر بزرگش جانت تکی اینان در دست گرفته بود و با حالتی متفکرانه پنیر خامه‌ای رویش می مالی. علاوه بر اعضای خانواده امه استر هم پشت میز نشسته بود. سری به آنها زده بود تا که که کاکاوی موزاییکی را که خودش پخته بود برایشان بیاورد و زود برود. اما نتوانسته بود در مقابل اصرارشان مقاومت کند و برای نهار مانده بود. الا با آنکه پس از نهار کلی کار داشت دلش نمی آمد از پشت میز بلند شود. این اواخر کمتر پیش می آمد همه اعضای خانواده این طور دور هم جمع باشد. فرصت خوبی بود و او امید داشت همه جف را گرم بکنند. دیوید یک دفعه گفت ام استر، الا مجده را به داد یا نه زنم کار فوق پیدا کرده خبر داری آن هم پس از این همه سال الا در دانشگاه زبان و ادبیات انگلیسی خوانده بود با آنکه ادبیات را دوست داشت بعد از فارغ و تحصیلی به طور منظم هیچ جا مشغول کار نشده بود فقط برای چند مجله زنان کارهای جزئی ویراستاری انجام داده بود. عضو بعضی کلوبهای کتابخانی شده بود و هر از گاهی هم برای روزنامههای محلی نقد کتاب نوشته بود. همین و بس. با آنکه زمانی دلش میخواست منتقد سرشناس کتاب بشود، اما روی این خواستهش گرد زمان نشسته بود این واقعیت را پذیرفته بود که سیلاب زندگی او را به سمت و سویی کاملا متفاوت کشانده است آخر سر نه منتقد مشهور ادبی بلکه زن خانهدار وسواسی شده بود با کلی کارخانه و مسئولیت‌های خانوادگی که علاوه بر همه اینها با سه تا بچه هم باید سر و کله میزد. البته خیلی هم ناراضی نبود. مادر بودن، همسر بودن، رسیدگی به سایه، سر و سامان دادن به امور خانه، آشپزخانه، باغچه، خرید، شستن رختها، اتوکشی یعنی در زندگی و اندازه کافی سرگرمی داشت مگر همینها بس نبود که حالا بیاید برای قاپیدن نان از دهان شیر خودش را به دردسر بیندازد با آنکه همکلاسی هایش در دانشگاه اسمیت که پر از فمینیست بود از انتخاب الا خیلی خوششان نیامده بود او اهمیتی نمیداد سالهای سال از اینکه مادر، همسر و خانم خانداری پایبند خانه و خانواده باشد، کوچکترین ناراحتی حس نکرده بود. البته خوب بودن وضع مالیشان باعث شده بود، احساس نیاز به کار پیدا نکنند. الا از این بابت سپاسگزار زندگی بود. هرچه باشد، اش به ادبیات را از توی خانهاش هم میتوانست پیگیری کند. تازه عشقش به مطالعه هم کم نشده بود. هنوز هم کرم کتاب بود یا اینکه دلش میخواست فکر کند اینطور است. اما روزی رسید بچه ها عاقل و بالغ شدند و خیلی واضح نشان دادند، که دیگر دوست ندارند مادرشان در هر کاری دستشان را بگیرند الا هم که دید اوقات فراغت زیادی دارد بالاخره تصمیم گرفت کاری برای خودش دست و پا کند با آنکه شوهرش او را تشویق کرد و مدام در این باره صحبت می‌کردند و منتظر فرصت بودند ولی قرار نبود الا به این راحتی ها کار پیدا کند کارفرماهایی که برای کار به آنها مراجعه کرده بود یا دنبال آدمی جوانتر می گشتند، یا آدمی با تجربه تر الا که مدام به در بسته میخورد غرورش قرورش جریه دار شد و عطای کار را به لغایش بخشید با این حال در ماه مه سال 2008 تمام موانعی که این همه سال در برابر کار پیدا کردنش ردیف شده بود به شکلی غیرمنتظره از میان رفت. چند هفته پیش از آن که به چهل سالگی پا بگذارد، پیشنهاد جالب توجهی از یکی از ناشران بوستون دریافت کرد. در اصل کسی هم که کار را برایش پیدا کرده بود، شوهرش بود. یکی از مشتریهایش واسطه شده بود. شاید هم یکی از مترسهایش. الا فورا شروع کرد به توضیح دادن. نه بابا، همچو کاری هم نیست. توی یک مؤسسه انتشاراتی دستیار دستیار ویراستار ادبی هستم. سرتاش همینه یعنی نوکر ما چاکری داشت اما به نظر نمی رسد دیوید اجازه بدهد زنش کار جدید را تغییر کند پرید وسط و گفت عزیزم برای چی این حرف را میزنی؟ خب این را هم بگو که چه مؤسسه انتشاراتی معتبری است دیوید با آرنجش به الااس اما دید صدا از زنش در نمی آید. برای همین در حالی که با زوق و شوق سر تکان حرفهای خودش را تأیید کرد. انتشاراتی خیلی مشهور و معتبری است، ام استر. از بهترین ناشران کشور. خوب است بقیه دستیارها را ببینی. همشان جوانند. همهشان فارغ و تحصیل دانشگاه های اسم و رسمدار. بینشان حتی یک نفر هم نیست که مثل الا این همه سال خانهداری کرده باشد و بعد دوباره مشغول کار شده باشد. ببین چه زنیست مگر نه؟ الا تکان مختصری به خودش داد و شانههایش را صاف کرد. تبسمی ساختگی بر لبانش نشست. کنجکاف شده بود بداند چرا شوهرش این همه دست و پا میزند؟ آیا میخواست همه سالهایی را تلافی بکند که نگذاشته بود او کار کند؟ یا اینکه چون به او خیانت کرده بود احساس پشیمانی می کرد و میخواست به این ترتیب رابطهشان را دوباره گرم کند؟ کدام یکی بود؟ راستش توضیح دیگری به ذهنش نمی اینطور با اشتیاق و ذوق و شوق حرف زدن دیوید توضیح دیگری نداشت. دیوید تعریفهایش را ادامه داد. آدم چشم و سیر به این می گوید. همه من به وجود الله عزیزم افتخار می کنی. امه استر با صدای تأثیر گذار وارد صحبت شد. همین طور است. الای عزیز لنگه ندارد. همیشه همین طور بوده. انگار الا از پشت میز بلند شده و به سفر آخرت رفته بود و او داشت با اندو یادش را گرامی می داشت. همه آنهایی که پشت میز نشسته بودند بدون استثناء مهربانانه به الا نگاه کردند. طوری شده بود که ایوی هم گوشه و کنایه زدن را کناری گذاشته بود و اورلی هم توانسته بود یک بار هم که شده به چیزی غیر از ظاهر خودش توجه کند. الا کوشید از این لحظه سرشار از محبت لذت ببرد. اما نتوانست. نوعی دلزدگی بیطاقتی از درونش می جوشید. علتش را نمیدانست. کاش یکی پیدا میشد و این موضوع نچسب صحبت را عوض میکرد. دوست نداشت در مرکز توجه باشد. درست همان لحظه دختر بزرگش جانت انگار که دعای بی صدایش را شنیده باشد یک دفعه قاطی صحبت شد. من هم خبری برایتان دارم. مجدگانی می خواهم. همه سرها به طرف جانت چرخید. کنجکاوانه، سراپا گوش منتظر ادامه حرفش شدند. جانت یک دفعه گفت. اسکات و من تصمیم گرفته ازدواج کنیم. خب، حالا میدانم چه می خواهید بگوید. هنوز دانشگاهتان تمام نشده. حالا صبر کنید. چه عجله‌ای دارید؟ هنوز جوانید و غیره و غیره. اما تو را به خدا درک بکنید. هر دوی ما برای برداشتن این قدم بزرگ آماده ایم. سکوتی غریب بر میز آشپزخانه حاکم شد. گرما و احساس نزدیکی که تا یک دقیقه پیش همشان را دربر گرفته بود، دود شد و به هوا رفت. ارلی و ایوی با نگاههایی گنگ به یکدیگر خیره شدند. امه استر با یک لیوان آب سیب در دستش، مثل مجسمهای خنددار و چاق، ساخته ی دست مجسم سازی دیوانه ماتش برد. و همانجور خوشگش زد. دیوید طوری که انگار اشتهایش کور شده باشد، کارد و چنگال را کناری گذاشت. چشمهایش را تنگ کرد و به جانت نگاه کرد. در چشمهای قهوهای روشنش اضطراب و نگرانی موج میزد. یکدفعه یک دفعه چنان ابوس شده و ترش کرده بود، انگار یک شیشه سرکه سرکشیده. کشیده. جانت که متوجه و اوضاع شده بود شروع کرد به نال وزاری. اح، بفرمایید. من را بگو که خیال می کردم خانواده از شادی بال در می آورند و پرواس می کنند. اما کو؟ حال روزتان را ببینید. هر کی ببیند فکر می کند چه خبر مصیبت باری داده دیوید طوری که انگار خود جانت نمیداند چه گفته و باید کسی برایش تکرار کند گفت دخترم کمی قبل گفتی میخواهی ازدواج کنی بابا جون خودم متوجهم کمی ناگهانی شد اما اسکات دیشب سر شام پیشنهاد کرد. من هم بله را دادم. خیلی خوب، اما برای چی؟ الا بود که این را پرسید. همین که جمله از دهانش خارج شد، از نگاه های دخترش فهمید که از چونین سوالی تعجب کرده. اگر می پرسید خیلی خوب، اما چه وقت؟ یا اگر می گفت خیلی خوب، اما چطور هیچ مسئله پیش نمی آمد هر دو سوال جانت را خوشحال و راضی می کرد و اینطور تعبیر می شد که پس می توانیم مقدمات عروسی را بشینیم. در حالی که خیلی خوب اما برای چی سوالی غیرمنتظره بود و جانت آمادگی جواب دادنش را نداشت منظورت چیز که میگویی خیلی خوب اما برای چی؟ لابد برای اینکه عاشق اسکات شدم. مگر دلیل دیگری هم میتواند داشته باشد مادر. الا در حالی که کلمه ها را یکی یکی انتخاب میکرد، کوشید حرفهایش را واضح تر بزند. نه عزیزم، منظورم این بود که تان برای چی بود. نکند حاملگی؟ امه استر سر جایش تکانی خورد. خودش را جمع و جور کرد، پشت سر هم صرفه کرد. آب سیب را کناری گذاشت و از جیبش یک قوطی قرص اسید معده درآورد. شروع کرد به جویدن. ایوی اما زد زیر خنده. خب، پس بگو توی این سن و سال دایی میشوم، مگر نه؟ الا دست جانت را گرفت، به طرف خودش کشید و آهسته فشارش داد. لابد میدانی که واقعیت قضیه را خیلی راحت می توانی به ما بگویی. هرچه باشد خانوادهات هستی و در هر حالتی پشتت را خالی نمی کنیم. جانت با حرکتی خشن دستش را کشید و فریاد زد. مادر، لطفا تمامش کن. حامله نیستم. اصلا چه ربطی دارد؟ این حرفها چیست که میزنی؟ الا در حالی که سعی میکرد آرام و متین باشد زیر لب زمزمه کرد. فقط میخواهم کمک کنم. با تحقیر کردنم میخواهی کمک کنی مادر؟ معلوم می شود که به نظر تو ازدواج کردنم با مردی که دوستش دارم فقط یک علت ممکن است داشته باشد. قضا قورتی حامله شدنم. یعنی فکر میکنه اینقدر ساده حتی از مخیله هم هم نمیگذرد که چون عاشق اسکات شدم میخواهم با او ازدواج کنم. درست هش ماه هست که با او بیرون میروم. الا گفت بچه نشو فکر میکنی توی هشت ماه میشود فهمید مردها چی توی کلهشان میگذرد؟ بیست سال است با پدرت زن و شوهریم. حتی ما هم نمیتوانیم ادعا کنیم همه چیز را درباره همدیگر میدانیم. هشت ماه با هم بودن مگر خیلی زیاد است. جلوی بچه به گذاری قهر میکند. وی لبخند موزیانهی زد و پرید وسط حرف. خب مگر نمی خدا دنیا را در شش روز خلق کرد. آن وقت ببین توی هشت ماه چه کارها که نمی کرد. همه که چپچپ چپ نگاهش کردند ایوی دهانش را بست و توی صندلیش فرو رفت. در این میان دیوید که ابروهایش را به هم گره زده و مشغول فکر کردن بود، حس کرد اوزا دارد خرابتر می شود. برای همین فوراً دخالت کرد. جانم، ببین، مادرت این را می خواهد بگوید. با یکی بیرون رفتن یک چیز است، ازدواج کردن با او چیز دیگر. جانت پرسید، اما بابا جان، یعنی تا دم مرگ باید همین طوری الا آهی کشید و دوباره خودش را وسط رینگ پرت کرد. والا بدون اینکه حرف را به یک دفعه می گویم من و پدرت منتظر بودیم آدم مناسبتری پیدا کنیم. رابطه شما را نمی شود رابطه جدی حساب کرد. راستش هنوز برای اینکه که ای جدی برقرار کنیم، خیلی بچه هستی. جانت با صدایی گرفته پرسید. میدانی چه فکر می کنم مادر؟ گمان می کنی همه چیزهایی که تو زمانی از آنها می ترسیدی، الان سر من می آید. اما اینطور نیست که چون تو در جوانی ازدواج کردی، و به سن الان من که بودی بچه دار شدی، من هم قرار است همان اشتباه ها را تکرار بکنم. صورت الله چنان سرخ شد که انگار سیله آبداری خورده بود. در گوشه از ذهنش خاطراتی که می‌خواست فراموششان کند جان گرفتند. حالتهایش موقعی که جانت را حامل بود، بیچارگیش، گریه های گاه و بیگاهش، بحران هایش، در اولین حاملگیش خیلی سختی کشیده بود. سلامتیش به خطر افتاده بود. دچار افسردگی شده بود. تازه مجبور شده بود زایمان زودرس بکند. دختر بزرگش که هفت ماهه به دنیا آمده بود، هم در دوران نوزادی، هم در دوران کودکی، انگار همه زور و قوه او را مکیده بود. درست به همین دلیل بود که برای دوباره بچه دار شدن ده سال صبر کرده بود الا. در این میان دیوید لابود تصمیم گرفته بود استراتژی متفاوتی امتحان کند که با آرامش وارد بحث شد. دخترم وقتی دوستیت را با اسکات شروع کردی، ما هم به عنوان پدر و مادر خوشحال بودیم. خوب، پسر خوب و درستی است خیلی آقاست، توی این دوره و زمانه همچو کسی را راحت نمی شود پیدا کرد. اما اجلی ندارید که، حالا بگذارید فارغ و تحصیل شوید، بعدش معلوم نیست چه فکری می کنید. یک دفعه می بینید که آن موقع وضعیت فرق کرده. جانت سرش را به نشانه ممکن است تکان داد. اما پیدا بود حرفهای پدرش خیلی هم به نظرش معقول نیامده. بعد یک دفعه سؤال غیر پراند. نکند همه اعتراسهایتان به این دلیل است که اسکات یهودی نیست. دیوید طوری که انگار نمیتوانست باور کند دخترش همچون نسبتی به او داده باشد چشم از او برکرداند. هرچه باشد همیشه به خودش افتخار کرده بود که پدری روشنفکر با فرهنگ، امروزی، لیبرال و دموکرات است. راستش صرفاً به همین دلیل در خانهشان حتی از حرف زدن درباره مسائل نژادی، دینی، جنسیتی و طبقاتی دوری می کرد. اما جانت دستبردار نبود. پدرش را از گردونه خارج کرده و دوباره نگاه های پرسشگرش را به مادرش دوخته بود. مادر توی چشمهایم نگاه کن و جواب بده. اگر اسم پسری که دوستش دارم اسکات نبود و آرون فلانشتاین بود باز هم اینطوری به ازدواجم با او اعتراض می کردی؟ صدای ژانت پیچ و, و تیغدار بود انگار. دل الا گرفت. یعنی دخترش اینقدر از دست او عصبانی بود و دقه داشت؟ یعنی این نیش و کنایه میزد و مشکوک بود؟ عزیزم ببین چه خوشت بیاید چه نیاید حالا که مادرت هستم باید واقعیت هایی را به تو بگویم جوان بودن، عاشق شدن، پیشنهاد ازدواج گرفتن اینها چیزهای خیلی قشنگی هست. مگر خودم نمیدانم من هم زمان خودش اینطور طور چیزها را از سر گذرانده اما حرف ازدواج که پیش می آید باید کلهط را به کار بیندازی ازدواج کردن با کسی که خیلی با تو فرق دارد رسما یعنی قمار کردن ماها که پدر و مادرت هستیم طبیعی است که از تو بخواهیم بهترین انتخاب را انجام بدهی خیلی خوب اما اگر انتخابی که به نظر شما بهترین است در نظر من بدترین باشد آن وقت چه؟ الا منتظره همچو سوالی نبود. با نگرانی آهی کشید و شروع کرد به مالیدن پیشانیش. اگر درد میگرن به سراغش آمده بود سرش اینقدر درد نمی‌کرد. من آشق این پسر هستم مادر می فهمی؟ جایی آن پشت و پسله های ذهنت همچه کلمه ای مانده؟ عشق. همان که می گویند وقتی دچارش بشوی قلبت تاب تاب می زند. آن وقت آدم نمی تواند بدون عشقش زندگی کند. الا ناخداغاه قهقه زد. با آنکه نمی‌خواست دخترش را مسخره کند اما خنداش آنطور به نظر آمده بود تم اعصابش به هم ریخته بود. خودش هم نمیفهمید چرا اینطور شده. چون پیش از این دهها بار شاید هم صدها بار با دختر بزرگش دعوا کرده بود. اما هیچ وقت اینطور معذب نشده بود اما امروز انگار نبا دخترش، بلکه با دشمنی بسیار موزی و آبزیرکاه دعوامی کرد. جانت انگار دلخور شده بود. مادر، چرا میخندی؟ تو هیچ وقت عاشق نشده ای؟ آه، بس از دیگر، حوصلهام را سر بردی، بیدار شو عزیز من، خواهش می کنم چشمهایت را باز کن و بیدار شو. آدم که نباید اینقدر صاف و ساده باشد. اینقدر لحظی انگار برای پیدا کردن کلمه‌ای که دنبالش میگشت اطرافش را نگاه کرد. آخر سر اضافه کرد اینقدر رمانتیک. جانت با ناراحتی پرسید خب مگر رمانتیک بودن چه ای بی دارد راستی رمانتیک بودن چه ای بی دارد الا به فکر فرو رفت قبلا این طور نبود قبلا برای اینکه بتواند از شوهر خودش انتقاد کند که چرا به اندازه کافی رمانتیک نیست هوای این کلمه را داشت خب از کی تا حالا از آدمهای رمانتیک خوشش نمی آمد. جواب این سوال را پیدا نکرد. باز هم با همان روش سفت و سخت و دستوری به حرفهایش ادامه داد. عزیزم، در چه دور و زمان ای زندگی می کنی؟ این را توی کلت فرو کن که زنها با مردی که دوستش دارند ازدواج نمی کنند. زن وقتی دید کارد به استخوان رسیده و لازم است برای آیندهش یکی را انتخاب بکند، آن وقت می گردد و مردی را پیدا می کند که حس میزند پدر خوب و شوهر خوبی از آب در می آید و می شود بهش تکیه کرد. فهمیدی و گرنه عشق حس خوشایندی است، که امروز هست و فردا نیست الا جملهش را تازه تمام کرده بود که نگاهش با نگاه شوهرش تلاقی کرد دیوید دستهایش را روی سینه قفل کرده بود و بیا آن که تکانی بخورد یا حتی نفس بکشد با چشمانی ثابت داشت نگاهش میکرد پیش از این اصلا ندیده بود که این طوری نگاه کند درون الله انگار چیزی سوخت ناگهان جانت گفت: من میدانم درد تو چیست مادر تو به خوشبختی من حسودیت می شود. نمی توانی ببینی که جوان هستم میخواهی من هم عین تو بشوم. خانم خاندار بدبخت و منفعلی که از بیحوثلگی دچار بحران شده. الا انگار که سنگ بزرگی وسط معدهش گذاشته باشند، همانطور ماند. پس دخترش او را اینطوری میدیده. خانم خاندار بدبخت و منفعلی که از بیحوثلگی دچار بحران شده. همین طور است زنی معمولی که نیمی از راه را پیموده و زندانی زندگی زناشویی شده که رو به ویرانی است پس تصویرش طوری بوده شوهرش هم این اینطوری میدیدش دوستهایش چطور همسایههایش در یک لحظه نگرانی به جانش افتاد با خودش گفت نکند همه اطرافیانش در خفا دلشان به حال او میسوزد. و این فکر موزیانه چنان درونش را سوزاند که نفسش بند آمد و نتوانست حرفی بزند دیوید رو به دخترش کرد و گفت زود از مادرت خواهی بکن ابروها را در هم گره کرده بود و صورتش آویزان بود اما این اداواتوارش نه طبیعی بود نه باورپذیر الا با نگاهی یخزده گفت «ای ندارد منتظر عذرخواهی نیستم جانت نگاهی ناباورانه به مادرش انداخت بعد با سرعت با خش. دستمال سفره ای را که جلوش بود پرت کرد صندلی را به عقب هل داد از پشت میز بلند شد و از آشپزخانه دوی بیرون هنوز یک دقیقه نگذشته بود که اورلی و ایوی هم پشت سر هم از جایشان بلند شدند و پاورچین پاورچین بیرون رفتند یا به شکلی غیرمنتظره میخواستند از خواهر بزرگشان حمایت کنند یا اینکه از صحبتهای سرد و بیروه بزرگترها خسته شده بودند پشت سر آنها امه استر هم پا شد همانطور که داشت آخرین قرص میدهش را چرق و چروخ میجوید بهانهی علکی آورد و زد بیرون اینطوری پشت میز فقط دیوید و الا ماندند. توی هوا انگار غم و موج میزد خلع میان زن و شوهر آنقدر قلیس بود که میشد با دست گرفتش و هر دوشان خیلی خوب میدانستند که مسئله نژانت است و نه دیگر بچه هایشان. مسئله خودشان بودند. زندگی زناشوییشان که خیلی وقت بود آتشش رو به خاموشی بود